بسم الله الرحمن الرحیم فصل بیان النجاسات و ازالتها فصل بعدی در رابطه با بیان کردن نجاسات هست و از بین بردن نجیس ها و كل ماء خارج من السبيلين نجس الا المنیه هر مایعی که از دو راه خارج شود نجس است جز منی مثب احناف منی رو نجس میتونه خوب این جهت آگاهی بود بحثمون حل مسئله هست نظریه شوافه هم میتونه قوی تر باشه هر مایهی که خارج بشه از سبیلین نجس است جز منی و غسل و جمعی الابوالی و الارواث واجب. شستن تمام شاش ها و فضله ها و سرگین ها واجب است. ال بول صبی الذي لم یکل الطعام جز شاش آن بچه ای که آن بچه شیرخاری که هنوز غذا نمیخورد بعضی غذا خوردن شرط نمیدونن بعضی از فوق ها بگاه های میگن مادامی که شیرخار تا دو سالش بولش نجس نیست چی شستنش واجب نیست نجس بودن بحث نیست شستنش واجب نیست وَإِنَّهُ يَطْهُرُ برش الماء عليه، پس میگن شستن تمام ابوال بولها واجبه جز شاش بچه ای که غزانه میخوره بچه شیخاری که هنوز غزانه میخوره فَإِنَّهُ يَطْهُرُ بِرَشِّ الْمَائِ عليه همانا پاک میشه بولش با پاشیدن آب برآن ولا يعفى عن شيء من النجاسات الا اليسير من الدم والقيء وعف نشده است يا عف شود گذشت شود از هیچ چیزی از نجاسات مگر خون کم و زرد آب یا همون ریم کم بله خون کم باشه دیگه نیازی به نیست وما لا نفس له سائله إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه ميجي وما لا نفس له سائله وأنك خون جاري ندارد حشريك خون جاري ندارد زمانك افتاد در زرف ومورد در آن فإنه لا ينجسه آن زرفو نجس نمیکنه چون خونی چاری نداره زنبور مثلاً والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما حیوان همهش پاک است حیوانات پاکند جز سگ و جز خوک خنزیر و آنچه که از این دوتا تولد بشه یا آنچه که از یکی از این دوتا تولد بشه بله اون دیگه پاک نیست و كلها کلوها نجیستون الا مردار همه اش تمام مردار ها هر که مرد کلوها نجیستون همشون مردارن الا جز یک از سمکو ماهی دو والجرادو والجراده یک از سمکه، والجراده، ملخ، سه، والآدمیه، انسان وی الاناء من ولوغ الكلب والخنزیری سبع مرات احداهن به شصه شصمیش زرف از لیسیدن سگ و خوک هفت مرتبه که یکی از اون هفت مرتبه هاش با خاک باشد حالا اینجا خنزیر البته در نس نیومده قیاسش گرفتن از سگ فقه های بزرگوار شافعیه و اینی که یک مرتبه با خاک شسته بشه خب در روایت اومده حالا این که های معاصر بگن باریکا جای خاکو میگیره یا نه اینو واگذار میکنیم به فقه های بزرگوارتون و من سایر النجاسات مرتن تأتی علیه و تو افضل پس از و خنزیر هفت مرتبه که یک مرتبهش با خاک باشه در ادامه میگه و شسته میشه از بقیه نجاسته یک مرتبه و تو افضل اما سبار شستن بهتر است افضل است و اذا تخللت الخمرتو بنفسها طهرت زمانی که سرکه شد شراب به خودی خود بدون دخالت انسان خودش تبدیل به سرکه شد تهورت پاک می‌گردد. ولی و این خللت به ترحیش اینفی لم تطور اگر سرکه شد با انداختن چیزی در شراب آه، چیزی درش انداختن که تبدیل به سرکه شد لم تطور در این حالت پاک نمیشه فصل فصل بعدی احکام الدمی عند المرأه أحكام خون نزد زن ويخرج من الفرج ثلاثة دماء خارج مشى الزن الشرمقاه الزن سخون يك دم الخيض الحيض ده خون حيز همون عادة ماهيانه دو والنفاس خون نفاس همون فيلادات سوى الاستحاذ خون استحاذ فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرعتی على سبیل صحتی حیز آن است که خارج میشود از شرمگاه زن بر سبیل تندروسی و صحت یعنی فرزندی به دنیا نیامرده مریض نیست بر, فر... بر سبیل صحت این خون خارج میشه من غیر سبب الولاده بدون سبب ولادت ولونه اسود محتدم لذار رنگ این خون سیاه است محتدم یعنی خیلی سرخه که به سیاهی میزنه لذا لذا درد سوزنده رو میگن دردی رو میگن که صاحبش احساس سوزش میکند همراه با درد است خلاصه اینجوری میکن و النفاس هو ادام الخارجو اقیب الولاده نفاس خونی است که بعد از ولادت فرزند بعد از وضع حمل خارج میشه و الاستحازتو هو الدم الخارجو فی غیر ایام الحيض و نفاس استحازه خونیست که خارج میشه در غیر از ایام حیز ایام عادت ماهیانه همون پریود و نفاس و ولادت بله این دیگه وز... رحم نیست و یک رگ هست من ارق در روت واقل وقل حیزی یا اون وله، کمترین مدت حیز یک شبانه روزه و اکثر هو هم عشر ایوم وترین مدت حیز عادت ماهیان 15 روز است. بیش از اون دیگه حیز حساب نمیشه. و غاالب ح غاالبا هز 6 روز یا 7 روز است وقل نفسی لهلحظت کمترین مدت نفاس یک لحظه است خونه ولادت و اکثره 60 یامن اکثرش 60 روز است و غالبه 40 یامن 40 غالبا میگه 40 روز و اقل الطهر بين الحيزتين خمسة عشر يوماً، بین الحیزتين 15 یوما کمترین پاکی که بین دو تا حیض رخ میده 15 روزه ولا حد اکثرش اندازه ای ندارد حدی ندارد و اقل زمن تحید تحید فيه المرأت تسع سنین کمترین زمانی که زن در آن حز میشه نوح سالگیه این کمتر از اون دیگه هیز نمیشه سال شیش ساله و اقل الحمل ستت و شر کمترین مدت حمله ماه و اکثره اربع سنين بیشترین مدت حمل در شکم حاملگی میگه چهار سال است و غالبه تسعت اشهر اغلب غالبش هم نه ماه است ويحرم یحرم بالحیض و النفاس حرام میشه باحز و النفاس هشت چیز یعنی در روزهای حیز و در روزهایی که زن خون نفاس داره هشت کار برش حرام هستند. یک اصلات نماز خاندان دو و صوم روزه البته فرق نماز و روزه اینه که نماز از گردنش ساقت میشه اما روزه نه روزه رو بعدا قضایی میاره سه و قراءة القرآنی قراءة قرآن چهار و مسل مصحفی و حمله دس زدن مصحف دست زدن قرآن و حمل کردنش پنج و دخول المسجدی پنجوین کاری که حرام میشه بر شخص بر اون زن چون مرداکی ندارن داخل شدن در مسجده شیش و تواف، و طواف کردن شیش من چیزی که بر زن حرام میشه انگامه عادت ماهیانه و خونه ولادت هفت و الواطع و آمیزش نزدیکی حشت الاستمتاع بما بين الصورة والرقبة بحر بردان لذات جوئي كان بردان ما بين ناف و زانو البته الروايتي اين زعيفة فوق الازاري كوماته الروايتي زعيفة ودر تعارض با الروايتي ديگه در صحيح مسلم وده كميجي اسنغو كل شيء اللا النكاح آه هر چیزی براتون هر چیزی رو انجام بدید جز جماع و همبستری و اون نزدیکی کردن و اون جماع و گرنه کامجویی از چیزهای دیگهش روایتش ضعیف است خب در هر صورت مذهب امام شافعی رحمۃ الله علیهم این رو ذکر کردن فاصل فصل بعدی و آخرین فصل استهارت ما یحرمو علا الجنوبی و المحدثی فعلوهو. آنچه که حرام است بر شخص جنوب و بر شخص بیوزو که انجامش. اون کارایی که بر شخص جنوب و بر شخص محدث بر شخص بیوزو حرام هستند در این فصل ذکر میکنه. و یحرمو علا الجنوبی خمسطو اشیاء. بر شخص جنوب پنج کار میگه حرام میشه. یک اصلاة و نماز. وقراءة القرآن قراءة القرآن سي المصحف وحمله المصحف مص وحملش تارو والطواف، الطوافو بانج واللبثو في المسجد ماندان در مسجد باهل فقاهينه، مجاند كبار ايناسون ادي هست. ويحرم هست ويحرمو على المحدث ثلاثة أشياء وحرام هست بار بيوزو سيتيز باس برجنوب بود وبر س سيتيز حرامه يك الصلاة نماز دو والتوافو سي تواف دو تواف سي كي اختلافيست ومسو المصحفي وحملهو دست زدن مصحف وحمل کردنش كفتم اين بين فقهاء اختلافيست بعضي از محققين مواسر اينو جائز ميدانند تا اين جاي كار كافيست ان شاء الله جلسه بعدی کتاب الصلاة شروع میشه